یدنا رسول الله و آلح القیدین و خافرین و لرس دائمت در این تخصیص عام مفهوم به مفهوم در خبر واقع بوده. این نقصه در حضر است. از طرف دیگم اده از قرمه اصولی اجماع کردن که به مفهوم موافقت خطن تخصیص میشه در مفهوم مخادر مفهوم موافقت خطن تخصیص این ریده کاری های بس و بس در آخر بست هم روشن بس راجب تقسیس ها هم مفهوم بود که متعرض شدیم و, و این کلمات که مستاد برشمانم بودید این روز و که یه ها از که مبانی از ها موانی بود تویید. چه قدم ها چه, چه به کیفیت مفهوم هدف از حل این که با مقدمه اول و احساس میشه اینه که آیا با همین مقدار این مسئله حل میشه یا نمیشه این مسئله بسودم که آیا آم همیشه که به منطوع تسبیس میکره به مفهوم هم تسبیس میکره این مسئله رو چی مبانی حل میشه مثلا مبنی اول مسئله اول این مسئله حل میشه که ما مبانی مدربو به مفهوم و در مفهوم از کجا باشیم خدا باشی؟ اون مبنا رو داشته باشیم اون مبنا این مسئله هم میشه و بعد ایتا با خواسته دیروس پنشتا در سبوت مفهوم هرز کردن یه مبنا بعد بود یه وجود درداره اعتبار بود یه مبنایی که در اعتبار با قدمات حکمت بود یه مبنان دلالت فیره بود یه مبنان همه حسله خب این پنج مبنان مختلف صحبت اینه که آیا با وجود این پنج مبنان این مسئله هم میشه یا مقادلیت هم میخواه مثلا نگفت این وضعه خب بگر محلوم تخصیص میدارم چون مظلوم دلازه به وضعه آمن به وضعه مظلوم با میشه چون که مظلوم آمن فصله مبنان میزن اگه به وضعه هسته اگر به عقل باشه بگیم نه چون اصل عملی در جای دلیل نباشه آم دلیل به دیگه مثلا مفروم تخصیص نیست مثلا روی ضمن این پنج ممنای که الان اعطف کریم پنج ممنا بود تفسیر رو کن از برای که مخدمات حکمت بود چون در کلمات برمون استاد مولود به اطلاع مخدمات حکمت در توی هیگه هم آمده در که پایه کلمات دیگ راجب این یک توضیح من اخیران هرز کردم اون توضیح کنم همینجا در نظرتون باشه یعنی در حیقتر اگر اون توضیح هم اضافه کنیم میشه شیش منع نه پنش اون چون اطلاع رو میشه یه جوری هم منع کرد که به اطلاع تقریبا بشه شیش منع و من اون این که بگیم این که بگیم اطلاع مراد ما از اطلاع گایی به محنای مجرد احضر به محنای به مقدمات من تابقا نهارد کردم این توضیح را از کردم که اطلاع در اصطلاع آریان از اصطلاع برمی کنه اما اصطلاع آریان نموشده به همینطوره ولی این مطلب به مجرد احضر مقید میشه نمیمه اطلاع اینه تایی برمه یه مرمه اسلامی اینه که خیل نه اونها زباید تو مقام هم باشه نمویش از عظم خیل نید که مقومه هم داره تو مقام بیان باشه، عظمات کردن نباشه، خلیم نست مکنه عمدش مقام بیان بودن ولیتا ما هز کردیم، مثلا اونه با مثال اینکه این واجب تنینید یا تخصیلی، همینی که خیل نه که تنینید نمو خود مقام بیان رو موشید مثلا گفت پسر اموز خیره شد پسر اموز کافی پول بده پسر اموز نگو پول بده پسر اموز یا جا کن نواز خور همینی گو پول بده کافی توی این چه وجود وجود تقییم همینی که اصف به اون هم نکر همینی که خیلی نه یه اوخ نه یه آبردنه خیلی کافیست اما اگر گفت پول بده پسر اموز شک کردی واجب نفسی یا بگیم این قیدنه بردن کافی نیست مثلا پوش بده بزرم او اداره قبول بکنه قبول میشه یعنی که تو اداره قبول میشه میشه قیدی خوده میشه باشه خود درسته در در میشه نفسی خود به این نفسی قیدی هم میشه آزد میگه اطلاق سیره اقتصاد میخواده که اون واجب نفسی باشه قیدنه این اطلاق احتیاج مقدمات حکمت داری پس ما دو چه اطلاق دار یه اصلاح هنه یعنی عدم خیلی یعنی همین که شما گفتید اینجا که ها که خود اگر مهمان آمد نان به همیتی بفتید هیچه بیدی نگفتید اگر مهمان آمد و روز جمعه بود با واقعید نگفتید اگر مهمان آمد یا روز جمعه بود با او بید نگفتید همین که بفتید اگر مهمان آمد خود این به تنهایی کافیست که این مخصوصا اون قول دیگه میگه نه ادم غیب کافی نیست باید تو مقام بیان باشه بدونید که داره بیان بکنه خصوصیاتش داره میگه مطالبی که مورد درداشه باید احراز داشه مقام بیان اگر احراز نشه در مقام بیانه به مونجر نیگو اگه میمان آمد نان این برای مفهوم ثابت نیست ولی ازا سر این که ما در محاضرات و عرفیمون خالباً مفهوم نمیتنیم مثلا اگر مهمان آمد نان بخن میگیم خب ممکن است اگر روش رو مهمون نان بخن اگر خواستی تفردی نان بخن ممکنه علت دیگر داشته باشه نان خریدن علتش مونه به مهمان نباشه این نکته چیه این مثال رو زدن برای اینکه محکوم ثابته خوده بکنه این مثال ها رو می زد در حقیقت این نیست اشتباه در کجا شده چون ما در محاورات عرفی تو مقام بیان نیست. پشتینه <تصفيق> تو محاورت عرفی وقتی پدر بگر چش میگه اگر مهمان نان آمد, آمد نان بخر این تو بیان جمعی اقسام علم علت من هر میگه اگر مهمان نان بخر یه روز یه اگر خاصی به یه نان بخر یه روز دیگه روز جمعه بود چون در محاورت عرفی عواملی که مثلا سادر میشه مثلا همین نان خریدن این تابع همون علتی نه ناظر باشه به علتمان خسره اما اگر فرص این مخلق قانونی مریضت شورا میخواد مخلق قانونی که یه بکنه به قدر مثلا اگر فلان کشور فلان کار رو انجام نداد ویزا نداد در افراد ما با اون مخلق ارواد سیاسی میکنه چون میخواد قانون رو ازبو کنه خود قانون خدا قانون تو مقام بیانه یعنی این سر و لذا در بحث محبوم از کردیم اینجا مثال های ارخی رو نمیده بر قانون نگه اعتبارات قانونی یک حسابه مثال های ارخی حساب دیگه یه ده پس مراد از این که محبوم ثابت میشه با اطلاق و مقدمات اتفاق مراد فقط نقیقه نیست مراد ما از قیدنز اینجا و و او چون اگر واو بیاره میفهمیم علت مستقل نیست اگر او بیاره میفهمیم علت منحصر نیست. فرده مثلا اگر مهمان آمد و روز جمعه بود نان پس مهمان آمدن علت مستقل نیست اگر مهمان آمد یا روز جمعه بود نان بخرد میفهمیم علت منحصر به اون نیست باشه اون پس قرف رو مثال نزنیم که شما سحور ما این اگر رو بهتار میباریم ولی این باز هم محکوم نداره سر چون تو محام ویان اما اون بچه دوبار چی میگفت بچه دوبار میگفت آقا همین که معتبر گفت تا اعتبار آمد کافیه ما کار اعتبار هر وقت تو جمله شرکی رو آمد هر معتبر باشه اون توش محکوم در میگفت پس بنابر این اینجا عوشن شد که با این که در اصلاح هم ما شما مرنا درست کردیم برای سبوت مفهوم این از مب... دو هم با سه رو میکرد نزدیک میشه نه ادنه قیل با اون مقام اعتبار با هم نزدیک میشه این راجعه این سوال آیا همین مقدار ترخه بخش حل میکنه مشکل ما رو مشکل ما آیا مفهوم مثل منطور تحصیص آن میزن؟ نه این سوال جواب بیاییم دیگه رو از چه راق اگر از جان برد گفتیم برای فقیس اگر از اصلاح اطلاف و مقدمات حکمت گفتیم اگر اون عام نزدیکش باشه نه فقیس نیزن چون باید عدم قرینه باشه اون یفت را به هست مثل این جا از اون فاسه همون بنابرایم و طبعی ما انتوسی و اون تو نزدیکشه اون یک نه برای قرینه بودن اما اگر گفتیم اصلاح از اما غلی نه از اون رای نه هست اون فقط یه اصلا مقام بیان باید باید بکنیم. یا گفتیم اصلا عملی پس این مسئله رو به این وسیله حل بکنیم حل این مسئله به این وسیله بشه که ما به این مبنای خودون رو درگاه مفهوم ثابت بکنیم خیلی اون مبنا اینجا نتیجی گیری بکنیم این خلاصه با. ببین اون بحث ریشیت که هم یه چلناست که رجوع به حجیه چیه این یه گدانس که اونقدر ساخته بشه البته معلومه استاد نعر کردن که بعضی گفتن داره من مفهوم مقدمش رو دراتش به عقل اجازه تلعقل درست مفهوم میکنه به خلاف عام که درات نفس و خود ایشان اشاره کردن جواب من البته این بحث سابقه آمد شود دقیقاً این مراد کلمه عقل جایی در این ها ابهام داره مثلا مراز ممکن است مرادی که دلالتی عقلیه مرازش همون حال متکلم فعل موشکردم که برای موارد چیزیه قائله یعنی بلاغ نیست ممکن است مراز از عقل هم مقدمات حکمت باشه اینجوری باشه که نفس داره ما مقدمه نه در اون لاونجا باشه میگن نه مقدمه چون اون بس مقدم این خیل و علت غایی این خیل علت غایی رایت کلمه از این ممکن ممکنه این ممکنه مراد این آیه ما رو خوی این, این باشه که یاده من بعدی نقولم من فعلا بحث امکان میکنم تا بعد توضیح بیشتری بیان و ممکنم که در بعض از کلمات آمده این مراد باشه که این یا اگر در لعات فارسی یا در لعات عربی دلالت بر تعلیق میکنه خب بگم مطلب این تعلیقه نه دلالت بر ثبوت این در ثبوت و انفعال این در انتفا نه اصلاً بحث ثبوت و انفعال نداره دلالت را تعلیق میکنه این این تعلیق اعاده میگه که اگر جایی تعلیق اینطوری انداخت اعاده میگه معنای تعلیق اینه که قشری قص مراد این از که خود این دلات بر نفی اندن نفی نمی کنه و ثبوت این در ثبوت این شاید مراد آن از عقل این باشه این حکم عقله که اگر در جایی تعلیق بود اون این چه کار میکنه؟ همون تعلیق رو معنی حرفی میاره کار خاصی نمی کنه خود تعلیق لازمه عقلیش عقلی که این از که انتفا باشه شاید مراد از عقل هم در سلال ایشانه این معنی باشه که بعد توضیحش میده شد. این تا اینجا یک معنی من قبل از این که دنبال تطریمه بحث برم من از این یک دو صورتی رو در به اصطلاح کتاب محاضرات آوردن برای بیان نصفت در بین آموهاست چون در مفهوم اینجا آوردن بعدم خودشون رو, خودش رو که فرقی نمیکنه. کنه همینه فرق نمیکنه. همین نمی من اون مطلب رو با عنوان حالا قبل این که بقیه بحث روشی. اشکام سه خود بحث در آدم و بانوان این جمله مطرده یعنی توضیحی را به این دو مطلب یکشون عرض بکنم که در بریم به خود مطلب چون بخواییم کلمهاتیشان آباده یه توضیح راجع به همین کلمه اداخل برد ما قرار کن داری سوشه و بیان نسبت او با یعنی نسبت این مفهوم، با مثل آیت حدیث مقاله که ما برواس کن داری سوشه خیل مدرمو مانده این چه نسبتی باید؟ این جا به نسبتن رستاد طولاری صحبت کردن دوسته صفحه صحبتتر بودن و این بس کلن وقتی به ما نحنوشید نداره چون این بس رو به تعاویر تونتر آزدیکتر و خونتر و شدتر و روشندتر و مبهمتر آیین مثلا آیین محاصرین کتاب های پیتیشون تو بسه کرو بردن وقت ما برو بردن آنون به هم اونجا مراجعه کن باید این ابان پیشون شهر بزن اون زمین که توی ماغذر در کلمات آن نقدر و ابراهن شده تو می خیلی هم فایده نداره فقط من یه توضیح رو اصلا چون ممکن است آنه گیر بکن که مراجعه برای استاد چیه ببینید در این جنر ماغذر واسه این یک مهموم یک گفت لا یون از جس این دوزن. بعد یک تحلیل هم فرمود فعل نلبو ماده واسه اون ظاهرن کنایه اش مرموستان محتم حالا محتم یعنی شما نگاه نکنید ته این شاه پنج وجب آب با قول ما صحره زیر تدینی داره این پنج وجب شما میبینید این در زیر زمین با آبها ارتباط داره پس مراد از واسه اون یعنی این مادکم رابطه داره با لیکن مراد امام به درینه این امام در مقام تشریع است و امام است و بحثای تشریعی میکنن مرادشون جهات تکریمی نیست نیمه های چهار شماسی به جماعه دادن نیمه های آبشار مثلا این ستا آب این است و این تا چندت مثلا نه این مرادشون نیست به قرینه مقام و منصب امامه وقتی فهمدن واسعونه مثل کردیونه نگاه نکنه از کرکندتره دلیلش خوب دقیق کنیم شما اون پنج و جب دو و آب و پنج مکعب اون پنج و دو باز مردلا آب کرده میشه بعدیم باز پر میشه شما بعدیم باز کرده این دلیل برایشی برای که فن نرها مواد داری واسه برای مهندس داری دلیل اینکه این مواد بر واسه آن فن نرها مواد موادم به این معنا یعنی هر کی شما بردنید به جایش میگن حکم دوم لا یونجس ممکن از مراده ما این تعلیم برای این باشه برای خویی و بر مشایخ دیگه چونجا بحث یاد شده آران فهم متاخرشیه یعنی فهم محاصر ما رو اینجا زیاد بحث کرده این فهم رو ماده علت از برای واسه هم یا علت از لا یونجس دو تا حکم خدا امام برمیده لذا محاسبه کردم نسبتی این رو با نسبتی الا برقل ما قدر کرده چون مشکل کارچیه تو اون حدیثم دو تا محاسبه قدر کرده یعنی مقدار آق حکمشم لایو نجیسوشه تو این حدیثم دو تا آقاده یکی واسعه یعنی حجم آب یکی لایو نجیسوشه یکی لازو نجیسوشه یکی لازو در اونجا هم اضافه بلغل ما قدر کر این مقدار هشون ماه آف این مقدار هشون الگا رو کن لایون از جسوشه حکم آمده اینجا آمده ما قدر واسعون لایون از جسوشه فعن نله و اون که مشکل درست کرده کلمه فعن نله و ماده که این فعن نله و ماده علت هست برای واسعون یا علت از برای جسوشه این نقود مهموم اصطاد در اینجا صحبه رو فرمیدن من اون را سوشایی شکردم را هم سوشاییش برای خود اون ملاحظه ده فرمین اگر میخوایی ملاحظه در این مطالعه این فعی نلغم مادرگار به واسه اون بذاریم بلایی نجد سوشه با اون نتیجه که ایشون مخواد بگیرن چون ایشون مخواد بگرن این دلیل برده این کر مقدم چون اون این بیدالن یک کنو قدر کنه یا نجد سوشه اون این مخواد بگرن اما حالا این نگارانی که استاد در اینجا رفتن یه توضیح بده، به شکل توضیح داده مثال دوم ایشون چون واضح‌تره، من اینقدر مثال دوم رو شرح میدم، علطی این مثال رفتی به خصوص با مفهوم نداره آقا، نشه این بحث رفتی با مفهوم نداره. ایشون مثال زده که مقام هم چنان که بین من و تو و بین یک بین دو سرایی ولی امون خصوص منوش باشه یه ظابطهی برن آدمان که ممکن از بین دوز دلیل امون خصوص باشه لیکن یک رو ما مقدم میکنیم صحبت دیگه برن. یعنی به انبارتون اختار در مرد از جاها میگه یک نکته یک خصوصیتی پیش میاد که سبب اون نقصی ما در این دلیل حالا مثلا مثال غیر از مثالهای اشان بزنم پس کن دقیق استثاب با قادره تجاوز استثاب بگیه امز با ها ست تجاوز میگه نه در ای در از از مواشراتی ساقن مشکلی شما در تجای شک کرده و رکوب کردی نه و نوز رکوب کردی در بشونی با ست ثابت رو خب این جامعه هم گفتن استثاب بگیه استثاب و شک میکنم خب پس من در حالت یام بودم حالت یام که هست تج شکم نبرای تو از ما رو برد جامده رو برد استثار رو برد قاعده تجاوز بلا برکه عطرت بشن قاعده تجاوز با استثار و اونا هر همیشون اینه که ما در اینجا قاعده تجاوز رو جای می چرا؟ شرا؟ چون اگر در مورد قاعده تجاوز استثار رو جایی ده یه قاعده تجاوز نورد نداره میمونه رو جایی واسه چون هر بار که شما قاعدت جو است حساب کنی حال است حساب از این یکی از راههایی که آقایان تهیه میکنند که وقتی دو دل دو آدم نگاه کردیم و ما آن بودن راه تقدیم آهات دلیل و دلیلی توریه. مثل مثلا روزی کل لوشین یکیه، مثل آقای کویان دادن، آنها نجع از ما خودیم. حالا و خوره، هر چی که پرورش میکنه اشغال نداره. اون به اصطبا ترزش اون سر... سرگینش خاش درست؟ از اون برم داریم که مالایو اوکر لحمه بردش اینها نگسته مثل گرد مثل شیخ مثلا مالای اوکر لحمه بردش نگسته خب دو سو داریم, داریم تایر بردش و روزش ها که مالایو اوکر لحمه نگسته خب نسته اوکر لحمه نگسته واضح دیگه معنى طائر کجاست؟ اگر طائر باشه و ملائکه باشه مثل عقا، مثل توتی این بال مسا طائر نه بلکه لایو کنده. ببین اینجا نسبت به این دو تا این خصوص من راش درک کنید. اون نمای قائله‌ای با این خود اون خصوص نه یعنی قائلت میگه مثلا اگر من آدم، اگر من عالم ها را سلام اون طائر میکنه تارود نه تو عالم فاسد، تو چ جاهل تارود نمی‌کنه، تو عالم آدال تارود نمی‌کنه، تو عالم فاسد تارود نمی‌کنه. من همچین چیزی می‌کنم. یه مورد میگه مالای و کله‌مو بولش نجدسه. یه مورد می‌گه تیر بولش تیره می‌گه مالای و کله. تیر بولش کله. تارودش کجا؟ تیر باشه مالایش کله مه باشه. آیا نجدس هست یا نجدس نیست؟ پشتم. سر به مثاله تا آروز و تا مقصود من راست ولما علمای ما سیاسست بارکوی نداره یک فرق این در بحث در هم آمده علمای ما آمده گفتن اون اکلو تیرن کلو شعنیتی خلا بحث به بولی و خوره در اینجا مقدم در اینجا مقدم. مقدم و حالا تقریباتشون متعنده متعاربن باهم اون تقریب تقریبایی که استاد همون بردن در اینچه ها این نقطه چیه اونجا فرمون مالایو کرد با اونش یا خوردش نشد سلام اینجا فرمون کار روشنی این یکی هست رد با آنوان خب اگر پرنده باشه مالایو کرد باشه پرنده باشه بگید نجیست اینجا که هر چیزی که غیر مرکولی نجیست اخذ بگونه قوم بگونه اخذ بگونه این مطلب درسته اشکال نداره بگیر نجیسه مشکل چیه؟ مشکل اینه که در من ما به دلیل کلوشه این یکی نکردیم. چرا؟ شما یه برگشتی موقعه ده که مرکول الله حاید مرکولی هم نجیسه ده خواهد فاره باشیم اگر شما اون دلیل رو مقدم بکنی مفادش اینه که آه اعتبار مرکول الله مرکولت بود بودش پاید استفراتون نگوستن قیل مرکولت بودش استان بودش نگوستن پایدشی کنم میشونگی اگر شما در تهران هم گفتی گفت این اون دقیق تقدیم پس این دلیل چی گفت ما کلوشین یکی یعنی فلا برزه بودش چه پاید چه نقطی برد چه نقطی برد چون اون که کرد اگر محکوله همون میشه کرده خوب خود اگر محکول هم خود که محکوله به همون این یه که استظهار بایی که نصبت به اون اون, اون و خصوص اون ما رو میگینه که او مندرشه سلطسته از از مسئول توکی مثلا اینا تحنی، اون تعمیم قبول کردن حتی تو علمای هستند. این استدلال مخالفین شما اگر در مورد ایانا کللا محا غملان آهانی گفتید نجف اون رو عموم کرد پس امام شو گفتن چه این یکی چه فائده داره همین دلیلی هم نیست که دوشی نیم این من صبح اون آورد. اینه که اون مکمل شما جمع که ای مکوله و مقدام نه میشه. نه نه نه می‌دونم قرار اون اصطلاحا کلمه کشو میشه مشخص کنیم یعنی چه تا میشه نباشه که پاکه باشه، بولش باشه. غیر معقوله که پایه‌ای باشه که نباشه، بول بجنجه. پس یخچال اکولوژی جدید. فکر یه در مورد این میگن، میگن میگن رفتی راستلی عنوان زاردی غیر از عنوان معقول، عنوان تایر، قولهقت این پرنده. بنابراین سوال اگر این عنوان رو كدهو می‌کنیم؟ یعنی بودن ارزش نداره یعنی اونو عموم را بگیریم خبیش شه به این تو پرنده آن اگر تعریفی خوب <تصفح> <تصفح> این اینه م... <تصفح> که خیلی خوبه پنده بوده شنو فیند اگر شما اون دلیل حرام رو مقدم بکنید بگید حرام گوش بولش دلیل ممکن رو بگید ممکن عنوان پرنده تاثیر نداره زمینی باشه هوایی باشه هر بولش ندیشه لذا اول خو یک مثال نه کجا در شهر عسكر کردن داره که ادعی داریم که اینا قادرن که هم داریم مقدره ای. اینا نه. اگر ما قرار بشه اون دلیل ما را می‌گوریم، یعنی اختیارات برنامه حکم شورای سازمان رو نمی داره. هاراموش در بوله تا، باشه، بولش پس یه اون برنامه شده ما چرا شما باید عنوان طاقت رو امغاق بکنیم لذا این یه خواهدش خوب دفع بکنیم اگر ما آموخاشی داشتم بنا شد یکیش رو تحضیم بکنیم دومی اصلا لفت بشه و اگر یکی دیگه رو کردیم اون یکی دیگه لفت نمیشه به زابطش روشنجد اگر ما دو تا دلیف داشتیم نصالش هم خصوص منورشی یکی را عمل کردیم که دیگری ترمی کردیم اون دلیلی که ترمی کردیم لرم میشه بیهوده میشه اما اگر به اون دلیف کردیم این دلیف جوی خودش نیمونه لرم نمیشه به یکی طبعه واقعه باید کار دوبون را نجام کردیم نه کار هم. ما مثلاً بیم در این مثال هر آبجوش بورش نداره، هر آبجوش بورش داره. هر پرانتیج بورش داره. می‌بینیم دو داریم. اگر دوستی اون دلیل از وردن یه هر آبجوش هر آبجوش مغازه می‌شود، و این دلیل لحظه میشه. هر پرانتیج بورش می‌تونه تار لحظه میشه. چنین اوضاعی داریم یه نمده تار. خب وگرایشیم هر آبجوش هر اما اگر نه. هر تائری به خصوص بولش پاکه غیر تائر هم اگر هلا روشه پاسی هران روشه نگذبه دیگه این دلیگ کلم کرده اون دلیگی باید موردگاره لرز نشد پرسنه شد زابطش چیه؟ این جساده زابطه در آمده از منکه این زابطه جورجی هم تقریف شده که چون برنیش داره بازهای جورجیه در اونجا متعلیش بشید این بحثت زابطه بحث خندیه دو تا نصفت دو تا دلیگوی سمو خوصو این بیگر یک راز که مرده می در باشه یکی رو در دیگری محزن بکنیم شکته باشم اون چند شد اون ضابط شد این اگر به یکی عمل کردیم دیگری لحب شد این یکی اما اگر به اون عمل کردیم اولی ولی لحب دو خب این دو ما چون با کار خود اون کاری کردیم که دو با دیگه لفتونه شد اون بتارید که اون تا گذر بردن تایی تا پرنده و اگر ما دلیل رو مقدم کردیم، اون هر پرنده درم میشه پایدا دارم اما اگر دلیل حرامگوشت مقدم مکردیم دلیل رو مقدم کردیم دلیل حرامگوشت یک روی محفوظ دیم و نتیجه این میشه اگر پرنده گوشه به که اگر رید پرنده گوشه حرام گوش حلال گوش اما حال دوستان که شهر این مطلب رو شما ممنون در شداز بست که دیگه خیلی او دموزه ی صحبت میکنه. مثلاً شما توزیعن که یک مثالی فرمودی خفیش. خب، برای به بحث مطلب وقتی این مطلب خرانتیش ندارم برای توزیع کلمات استاد دارم. برای این بحث مطلب چه کار در کارزار هم با مفهوم چه کار بکنی سوال. و اصولا اگر کاری بکنیم تحلیل ما چیه؟ و یاد دانشپیشه چیه؟ در همین مردآرکی که یه مبناه شما تو مفهوم چیلته بخواه اون مبناه از اون شش تا از که نرمی کردن مبناه شما مفهوم چیلته آیا همین کافی سوال یه نه چیز دیگه میخواه ما در بحث گذشته از مهم استاد استاد اوات های خوبیه با اوات چفایه همونجا بوده بود ایشان چیزی دیگه اضافه کرد بحث این که در کلام مؤیدونه یا نه در کلامی متکلم باشه که ناظر اهدها به دیگری باشه کلام مؤید یعنی به عبارات او صرف مجرد زیر بنا در مفهم کافی نیست باید اون مصدر اضافه بشه من گاهی برای این که شما با رنگای های آشنا بشین بعضی عبارات را هم می‌خونیم در اینجا مرحوم آزیا قدس الله سره از خیلی مرحوم آیه نای آذیا کتاب مقالات و اصول به قلم خودشونه و کتاب نهایت آدکار کتابی جنب های ماموای آموزی که نادیده شنیم، ایشون هم نیکان، از معمول آذیا دارن، لکن تقلیدات نهروان جاموجو و معلوم دیشون همون نهایت آدکار معمومه آشمون تری برجز دیگه دستالله و اسوار هم شنیم. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه این رو مفهوم لغوش این دشمنه گفتن الان فکر کنم که الان فعلا ترد دادن بیا بشه ما وارد بحث بشی ای برجدیان شبیهینی گفتن یعنی ای برجدیان گفتن مثلا جعل الله الماء طهورا انزل الله من السماء ما ان طهورا لا ينجس شيء ما غير لونه و طعامه و اینه اذا بلغ این معنیش اینه که آب بانانه آب و حبیبوب اضافه بلقل ما قدر کرره لان نجیسوشه من که آب با آب کافی نیست که هم با سوش باشه ممشه. این حیثیت کرریت با سوش باشه ولذا این تخصیصی زنه یعنی این آب با اینکه که پا کرده کم پرست کر باشه یکی چیز نذیست هم به شو خواه نذیستوشه چون اونجا عنوان عنوان ماهیت اینجا عنوان ماهیت و کرریت اینجا من جایت نیست الان متون درسی ما طارزه گردش بوده. ما من از خدای برای اینکه آن آشنا بشن، گاگای از عبارات اصحاب میاریم. اینجاست توی این مساله عبارات مقالات. چون مقالات اصولاً مروازی یا اندرنی فرنگی بود، سابق ان الله من اعمال الله فرنگ شده، در حوزه با در حوزه ما بود، در حوزه علوم به طور کلی بود. و اون بود که متون درسی و متونی که خیلی مغلق باشه، سر در ما رسوشه این پیچیده و مغلق این متن درسی باشه. مردم آذربایجان مقالات رو مقالر که کتاب درست میشه حدس میزنیم ولی کار بچناری الله حدس نمیزنه رو ما آخرین باید از این شرکت خارجی بود اسرع بود اسم ما بچناری بودیم نه فنی بروجیدی نبودیم از زندگیت میگه شاید آن بروجیدی گفتم نه آنها بد نبودی بروجیدی با بچناری استفاده میکنند مردم ما بچناری بساختیم از قبل تلقیه آمانتلوصول که شوهر خاله محمد از آن لحظه ایشان نه از گل آذیا ایشون خودشون هستن. دانه آذیا من میتونم این کتاب مقالاتشون خیلی بسنجی. کتاب درسی خواهد شد که فیج <تصفيق> کتاب من نشونت شد آذیا آذیا که بیش از سویی یه بیشتری بود این کتابش هر کتاب درسی داشت. در حال گفتم نرو از بچه ما از گل خدا ما هر احترام میشوند که علاقه داشته کتاب درست بیشه که وارد عبارتیشون میخونیم. ایشون میگن که احتمالاً جواز تخصیل عام کتبی و غیره ام غیره اشاره که بعضی این بحث بردن رو که در مثلا اخبار عام کتابی رو اشاره به تحت راسته راست هست به مفهوم مخالفه بعد از اطباقم عل التخصیص به مفهوم موافقه در مفهوم موافقت استتفاعی مفهوم, مفهوم مخالفه مفهوم مخالف محل کلامه علاقه من دیگه اینجا بالا بحث نست آخر بحث تو اما ما در محل خودش توضیح کافی دادیم که حق این است که مفهوم موافق اصلا مفهوم نیست اون ظابطه ای که برای مفهوم گفتن تو مفهوم موافقت نمیاد اشتباه شده حالا بحثش ای جدید بله بل اون اصلا نقطه دیگه دیگه مفهوم نیست فره هده الا کلن طریق و, تنقیح و من کارم اون وقت من می خواهم که ایشان ریشه بحث چجوری بررسی کرده و نتیجی دیدیم اون روح کلمات مشایخ بزرگان رو در نظر دید ایشون میگه که ظهوره مرادش از ظهور مفهوم و آمد اما ظهوره تارتن اخرا اخرى اطلاقیان سالتن مختلفان اون زیر بناب این میدونه یعنی اینجوری با تو بحث بارد بشیم مثلاً اگر بگیم سبوت سبب معنا آم به اطلاق این یک نتیجه دارد. معنا آم به ورد، معنا نتیجه است. مفهوم به اصلاح یک نتیجه زده. مفهوم به عوض میشه. و چون در آم و خاص هر دو این بحث آمده، پس ما اینطوری بگیم: ظهور آم و ظهور مفهوم. نقطه اینه، هر دو به ورد هر دو به اصلاح یکی به ورد، یکی به اصلاح. بله آخوندم شبیه این بود بس آخوندم شبیه, شبیه آخوندم. پس ایشان من روشن شد کیفیت ورودی ایشان در وقت از این راه یعنی به اوار از این اخراغ ایشان میخواد از راه ظهورات لحظی و جهات لقضی و منشأ ظهور آیا منشأ ظهور وضع یا اطلاق و مقدمات حکمت در حقیقت مرموم از این راه میخواد وارد باشه پس ما الان اون چیه؟ بحثون که با وجود آم و مخصوم کنم مقدمه یک تحلیل ما چیه؟ از چه راهی؟ مثلا الان تا حالا روشنه شد یک تحلیلی بود که شون مخصوم درازش عقلی مقدم، مخصوم گذشت. یه تحلیل این بود که اصولا مفهوم غیر از آمه مثلا دلازه ساندی آم درازش اولیه این هم راه‌های راه های متعددی من موازی از این راه باز میشه یا هر دو به بعد یه نقطه فنی اینه که ما زیر مشخص بکنیم هر دو به بعد هر دو به اطلاع یکی به بعد, یکی به اطلاع وقت داره وقت میگذاریم من یک نکته یادشون و علا ای تقدیره تارتن کلاه ما فی کلام واحد و اخره فی کلام مستقل این هر سال که پایان بود باید که این کلامه مستقلن این سالکفایی اینجوری گرفت واقعا دو کلامن اما عهده ما نازده به دیگه این دو کلام کاملا مستقلن جوز خود میبنید عبارت قراره است. کردید پس مرحوم آزیاد راه مرودش اینه اون وقت میگه ته انکانا متفقه این اگر هر دو یه جور باشن چه هر دو به باشن چه به اطلاق باشن فلاش که برد تی تساده امون ما اینا اگر با هم یا دو حکم مجمع دارم ولا که نزاله که لولا خصوصیتون موردیه موردیه این مجمع میشه اما بعض رهده ما تو فقر خصوصیت موردی داریم که اونجا مثلا یا امر مقدر دن یا محکوم خصوصیت موردی توج اقوائیت احده ما الاخر وزاده که رقم ما یختلف به اختلاف المقامات به برکت المناسبات المقامیه فی عبواب الفق ولا یک اونو سخت زابطه این که گاغگاهی یا محکوم اقوام میشه یا آم اقوام میشه این تو عبواب فقر فرم میکنه فر مناسباتش و مواردش فرق این نکته آزی یو معنا چیجور معنام میکنی مثلا من خودم خودم خواهی یعنی آزی ما باید این مسئله رو ما نمیستیم اصولی تنها حل بکنیم آه خود ایشون هم نمی‌دونم این تفسییر منه دقیق کردم یعنی گاه گاهی من عرض کردم ولی ما مسئله رو تو اصول آوردیم اما اون مسئله رو وقتی می‌خوای تو فقه اختلاف خیلی مشكله به قائلمن نمی‌کنه قائلمن نمی‌کنه ما در بحث دیگه آوردیم و من خیال می‌گم تو یه موضوع دیدم خودم قائله من وازیام اشاره بشه مثلا ثیره ظهور ثیره در فصاد مثلا ثیره لا تفعن سیغه نه در پسان من در اونجا هرز کردم انصافش مشکل ما اینه ما الان در مجموع آیات و آیات به, به لسانه همه نحی ها بسید نحی نیست مثلا گفت لاتبه خب لاتبه بود خوب بود بعضیش لاتبه بعضیش ضروردهید بعضیش خرمه علیکمه بعضیش مثلا لاتعظم و اغلطه نکاه ولا که ولا تنکه و مانکه ها آبا اصلا لسانه ها مختلفه و دقت بکنید چون نژادها مختلفه ما نمیتونیم این مسئله رو در موارد خاصش اصولی و تعریف بکنیم باید بره مورد طوفه این زاویه رو خیلی در نظر داشته باشیم آقازیان در اینجا در حقیقت بخواد اسهار اصحا... فقیره یا این معنای مولداریه میگه ما این نیست که اصول حلش بکنیم این مثل فرمول ریاضیات نیست بگم اگر هر دو واقعی بود اینطور هر دو اخلاقی بود اینطور این فرمول یاد یاد چرا؟ چون ما آمالین توفیل هر دو به ورد بوده با مشکل برخور کردیم قرارین بوده که اقوایات اهدامه رو برده بعد جا اقوایات آم بوده بعد جا مفهوم بوده خیلی این توجه آغازی ها تو لطیق من بیشتر اموز برای این عبارت کندم و این حبارتی ایشون نداره شاید ایشون رو این حبارت اضافه شد بندن اگر موردی شد میشه پ مورد مورد خب همین مورد همین میگه. واقعا میشین میگه خب همین خوندم برای چی بود میخوندم؟ میگه الا ولاک ذالکه درسته، مجمل میشه. لولا خصوصیت الموردیه توج و اقوایی ذعهد ما علی و وذالکه رو به ما یختلف اختلاف مقامات به برکت المناسبات مقامیه. فی ابواب ولا یکون رو تحت زابط هسته ها ها ها ها ها اینجا نمی همین تمام ده این از اونجایی که باید شخی حل بشه یه اصولی میگه اصول چون این اصول مثل ریاضیات نیست مشکل کاری نه ریاضیات از متغیرات صحبت میکنه اصولتون از ثوابت صحبت نمیتونیم سه ریاضیات باشه. نیمیتونی شما زابط من نیمیتونی شما فرمول ریاضی برای اصول از یه بحثید که الان اخیران چند سال شده مثلا حالا در سطح همه ی طلب ها با اونی که های ما اصولی مثل فرمول های ریاضی در بیاریم یکی از ما شده فرمول ریاضی در نمیان چرا شد در ریاضی ها دوی متغیرات کار می‌کنه؟ مثلا یه الف به اضافه با ده متغیرات ب بذنش شما اگه الف میگیم 4 بذاریم بجای د میتونیم 5 بذاریم بجای میگیم 9 4.5 تو به جای الف میگیم 10 بزرين. به جای بجای د میگیم 5 میذاریم که 15 ج میشه 15 این میشه متغیرات یعنی شما در ریاضیات از متغیرات استفاده می کنید لزوما میتونید حساب بکنید، فرمولی شه اما شما در من در اصول این رو نمیتونید بکنید چرا چون ثوابته این توجه و تفتون روشن شد تفتون آزیاد که ما در تل باید مشه اگر این شد این مسئله معظم شیشه فرمیدی میشه اصولی اصول به طور کلی میگه اگر هر دو بودن ابهام پیدا کردن پس مثلا به این که اجمال پیدا میکنه اما این که واقعا در همه جا اجمال باشه نه در خیلی از مورد قرینه هست و این تعیین مفهوم و جا راست که دارد السلام الله علیه محمد و آلہ الطه.